باران سیاه اثر ماسوجی ایبوسه با صدای آرمان سلطانزاده کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه در این چند سال شیگ ماتسوشی زوما از روستای کوباتکه مسئولیت یاسوكو دختر برادر زنش را بر عهده داشت. او نه تنها در این سالها که حالا هم فکر می‌کند بعد از این باید نسبت به یاسوكو احساس مسئولیت دوچندانی داشته باشد، گویا دینی بزرگ به گردن دارد. چون هر چند به سبب دوری یاسوكو وضعیت ساده به نظر می رسید اما ای پخش شده بود مبنی بر اینکه اواخر جنگ یاسوکو هنگام خدمت زیر پرچم در واحد آشپزخانه گروه خدمات مدرسه راهنمایی شماره دای هیروشیما کار می کرده. مردم روستای کاباتاکه در 25 فرسنگی شرق هیروشیما می گفتند یاسوکو بیماری بمب اتم دارد. میگفتند آقا و خانم شیگ ماتسو بیماری او را مخفی می کنند. حتی افرادی هم که برای خاستگاری از یاسوکو پیش همسایه ها تحقیق می وقتی این شایع را می شنیدند بی خیال می شدند و را ادامه نمی دادند. صبح روز ششم ماه اوت، سرگروه خدمات مدرسه راهنمایی شماره دو هیروشیما روی پل تنما یا پلی دیگر در غرب هیروشیما داشت آدرس می‌پرسید که بمباران شد. در آنی همه دانش آموزان سوختند. معلم راهنما از دانش آموزان خواسته بود سروده اگر به دریا روی را با صدای آهسته بخوانند. وقتی خواندنشان تمام شد دستور داد متفرق شوید و او خودش را که جلودار گروه بود توی رودخانه تقیان کرد انداخت. دانش آموزان هم همه از او تقدید کردند این خبر را یکی از آنها به گوش بقیه رساند که به سختی جان به در برده و برگشته بود اما گفته می شود او هم سرانجام مرد به نظر می رسد این داستان را یکی از اعضای گروه پیشگامان وطن شایع کرده است کسی که زاده همان روستا بود و از هیروشیما فرار کرد و برگشت با این همه کار کردن یا در واحد آشپزخانه گروه خدمات مدرسه راهنمایی شماره دوی هیروشیما حرفی بیب و اساس بود اگر هم در آن بخش کار میکرد دلیلی نداشت تا دختران آن قسمت در محلی باشند که سرود اگر به دریا روی در آنجا خوانده میشد یا در کارخانه فرویچی متعلق به شرکت سهامی نخ ژاپن واقع در شهرک فروئیچی در حه هیروشیما کار او مسئول دفتر و مانشی رئیس کارخانه آقای فوجیتا بود. بین شرکت سهامی نخ ژاپن و مدرسه راهنمایی شماره دو هم هیچ گون ارتباطی وجود نداشت. بعد از اینکه یاسوكو یاسوکو در کارخانه فرو چی شروع به کار کرد، در خانه موقت آقا و خانم شیگه ماتسو، واقع در شهر هیروشیما، شهرک سندا، کوچه دوم، شماره هشتاد و دو ساکن شد. همراه شیگه ماتسو، سوار تراموای برقی خط کابه میشدند و به کارخانه میرفتند و برمی گشتند. با مدرسه راهنمایی شماره دو و گروه خدمات هم به هیچ وجه ارتباطی نداشت. فقط یکی از سربازان دانش آموخته مدرسه راهنمایی شماره دو که به جبهه چین شمالی اعزام شده بود در جواب نامه و هدیه درگرم کننده یاسوکو به جبهه، نامه تشکرآمیز تشکرامیز معدبانه ارسال کرده و مدتی بعد از آن هم پنجشش قطع شعر در قالب واکان وشته فرستاده بود. شیگه یادش می آمد وقتی یاسوکو اینها را به همسرش نشان داد. او گفت یاسوکو اینها شعرهای سومانکا هستند. یاسوکو هم خلاف سن و سالش سرخ شد و خجالت کشید. در سیستم نظامی تفتیش بیان دوران جنگ شایعات بی اساس ممنوع بود و موضوع سخن افراد هم نباید از چارچوب های اعلانات و بخش نامه خارج می شد وقتی جنگ تمام شد شایعه راهزنی، زورگیری، قماربازی، اجناس انبار شده ارتش، داستان های یک شب پول دار شدن حرف و حدیث درباره نظامیان اشغالگر و شایعه های مختلف دیگر سر زبان ها می افتند. اما با گذشت زمان این شایعات و حرفها به فراموشی سپرده می‌شد. اگر ای هم که درباره یاسوکو پخش شده بود، چنین عمری داشت، خوب بود، اما ماجرا اینطور نبود. هر وقت خاستگاران برای تحقیق از یاسوکو می‌آمدند، دوباره شایعه حضور یاسوکو در واحد آشپزخانه گروه خدمات مدرسه راهنمایی شماره 2 هیروشیما تکرار می‌شد. شیگماتسو اول فکر کرد چه کسی چنین شایعه بیاساسی را پخش کرده و خواست دلیل این کار کسیف را پیدا کند از اهالی روستای کوباتاکه بجز شیه ماتسو همسرش و یاسوکو فقط آن جوان عضو گروه پیشگامان وطن و اعضای گروه خدمات هنگام افتادن بمب اتم در هیروشیما بود اعضای پیشگامان وطن جوانانی از مناطق مختلف هیروشیما بودند که برای کار در برنامه پراکند سازی اجباری خانه ها به منظور جلوگیری از آتش سوزی به خدمت زیر پرچم فراخانده و سازماندهی شده بودند. جوانان روستای کباتاکه وارد واحدی به نام کجین شدند که از ادغام واحدهای دو منطقه جینسکی و کانو شکل گرفته بود. وظیفه این افراد تخریب خانه های مردم بود. هشتاد درصد ستون های خانه ها را اره می کردند. بعد به تیرک های افقی تناب می‌بستند. 20 بیست تا سی نفر تناب ها را میکشیدند و خانه را ویران می کردند. خانه های یک طبقه با زحمت بیشتر و با صدای خشکی فرو می‌ریختند. خانه های دو طبقه به نسبت راحت‌تر و یک دفعه اما بعد از تخریب، گرد و قبار زیادی بلند می شد که پنشش دقیقه نمی نزدیکش شد درست روز دومی که واحد کوچین و اعضای گروه خدمات به هیروشیما رسیدند و کارشان را شروع کردند، هیروشیما بمباران شد. جز آنهایی که در دم جان باختند، بقیه افرادی را که دچار سوختگی شده بودند به میوشی، شوبارا، توجو و جاهای دیگری اطراف هیروشیما منتقل کردند. بنابراین، از روستای کباتاکه، اعضای گروه آتش نشانی، با اتوبوسی زغالی به آوارهای سوخته هیروشیما اعزام شدند. در ادامه هم صبح زود روز خاتمه جنگ اعضای گروه خدمات جوانان برای جستجوی زخمیها به اقامتگاه های موقتی مانند میوشی و توجو رفتند. اعضای گروه خدمات جوانان هنگام ترک روستا در محل کار جانشین رئیس گروه به سخنرانی روحی بخش دهدار روستا گوش کردند. به خاطر ماموریت‌های فراوان زمان جنگ به همه شما خسته نباشید میگویم نیازی به گفتن نیست که زخمی‌هایی که با خود برخواهید گرداند تمام بدنشان تاور زده است بنابراین از شما تقاضا دارم دقت کنید باعث درد و رنج بیشتر این زخمی‌ها نشوید دشمن با استفاده از سلاحی جدید از آسمان به شهر هیروشیما حمله کرده و در یک لحظه برای صدها هزار نفر از ساکنان بیگناه هیروشیما جهنمی به وجود آورده. با استناد به شهادت اعضای گروه پیشگامان وطن که از هیروشیما جان به در برده و برگشتند، هنگام ویرانی شهر با سلاح جدید صدای فریاد و ناله کمک آن صدها هزار نفر بیگناه جوری بوده انگار از عمق زمین خارج می شدن است. شهر فکویاما را هم که در برگشت دیده بودند تبدیل به دشتی سوخته شده. قلعه و برج دیدبانی سوزومی هم سوخته و از بین رفته. می جنگ دل را جریه دار می کند. اما این حقیقتی مسلم است که به هر حال جنگ اتفاق می افتند. شما اعضای گروه خدمات برای استقبال از همرزمانتان پس از شما شوید. نیزه خیزرنگی را هرگز زمین نگذارید چون این نماد تسلیم ناپذیری شماست از اینکه در تاریکی قبل از صبح چنین به تلخی برای شما حرف زده ام بسیار بسیار متاسفم در پایان باز هم از شما میخواهم وقایع اخیر را درک کنید وقتی سخنرانی دهدار تمام شد خطاب به 80 نفری که برای بدرقه آمده بودند گفت برای اینکه اعضای گروه خدمات با قدرت راهی شوند، تقاضا دارم سه بار فریاد بانزای سردهید. سپس خودش دو دست را بالا برد و فریاد کشید. اعضای گروه خدمات را به سه بخش تقسیم کردند. یک گروه به میوشی، یک گروه به شبارا و یک گروه به توجا رفتند. همه آرام آرام و پیاده دنبال گاری حرکت میکرد. گروه آزم به توجو در شهرک یوکی بین راه روستای کباتاکی به توجو در ایوان خانه کشاورزی در هاشیه راه نشستند و نهار خوردند. در آن لحظه صدای برنامه مهمی که از رادیو پخش می از داخل خانه به گوش رسید. همه برای مدتی ساکت ماندند. بعد شخصی که افسار گاری را می کشید گفت امروز صبح سخنرانی دهدار کمی طولانی بود، نه؟ این حرف آغازی شد تا مشورت کنند که با نیزه خیزرانی چه کنند. سرانجام همه توافق کردند نیزه را برای یاد بود در خانه کشاورز بگذارند. زیرا ایوان را در اختیارشان گذاشته بود. اقامتگاه توجا ساختمانی قدیمی و موقتی بود. دو نگهبان داشت اما هیچ کدام نتوانستند کمکی کنند تا گروه بداند باید چه کند؟ قربانیان بومبه اتم همه جا روی کف پوش تاتامی افتاده بودند. چون صورت همه آنها سوخته بود، قابل شناسایی نبودند. در میانشان کسانی بودند که قسمتهایی از سرشان که علاقاعده باید مومی داشت، کاملا تاز شده و فقط قسمتی از پوست آن که زیر پیشانی بند بود سالم مانده و گونه مانند پستان پیر زنها شل و افتاده بود. فقط گوش زخمی ها می شنید. از همین رو نامشان را پرسیده و آن را با مرکب چینی بر پوست تن لختشان نوشته بودند. اگر هم تکه لباس به تن داشتند، نامشان را بر آن نوشته بودند. زخمی ها درد میکشیدند ناله می کردند و جایشان را تغییر میدادند دادند. چاره ای نبود چون هرچند کاری خشن به نظر می رسید اما بدون این کار نمی توانستن آنها را سرشماری دکتر چه کار می کند؟ مداوایشان نمی کند؟ این را یکی از اعضای گروه خدمات از یکی از نگهبانان پرسید. از آنجا که دکتر مداوای این نوع بیماران را نمیدانست دست نگه داشته بود تا وضعیت بدتر نشود. جز درد سوختگی دلیل دردهای دیگر را نمیدانست پس دارویی به نام پانتوپان به آنها تزریخ کرده و فقط درد شش نفر را برای مدتی تسکین داده بود. ظاهرا دکتر از این دارو بیش از این در دم و نداشت. اینها سخنانی بود که روز بعد از آن شیگ ماتسو از یکی از اعضای گروه خدماتی شنید که از هیروشیما برگشته بود. همان روزها هم علایم بیماری اتمی در شیگ ماتسو ظاهر شد. وقتی هنگام کار در مزرعه کمی به خود فشار می آورد، وجودش سست و در سرش تصاویر مختلف کوچکی ظاهر میشد. موهای سرش را که میکشید بدون کمترین دردی کند میشد. در چونین مواقعی شیگه ماتسو دست از کار میکشید تا به اندازه کافی قوت بگیرد. علیم معمول بیماری حمی در قبانیان رخوت بود. چند روز که میگذشت موهای سرشان کاملا و به هیچ دردی میریخت. دندانهایشان لق لغ میشد و میافتاد. بدنشان ضعیف میشد و آخرش هم میم. اگر در آغاز بیماری رخوت بدن احساس میشد، قبل از هر چیز استراحت و تجدید قواب بسیار لازم و ضروری بود. آنها که با لجبازی به کار ادامه می دادند، مثل درخت کاجی که باقبانی ناشی جا به جایش می کند، به تدریج توان خود را از دست می دادند تا رشته عمرشان قطع شود. در روستای همجوار کباتاکه، و نیز در روستای همجوار این روستا افرادی بودند که از بمباران اتمی جان سالم به در برده یا به عبارتی با سلامت کامل به روستایشان برگشته بودند. آنها یک یا دو ماهی سرگرم کارشان بودند اما در عرض یک هفته تا ده روز همگی زمینگیر شده و مرده بودند. وقتی بیماری در قسمتی از بدنشان ظاهر می شد و دردهای خاص آن را احساس می کردند به خود میقبولندند که اینها نشانه های کتف درد و کمر درد و بیماری های از این دست است. پزشکان صحرایی بیماری شیگاماتسو را آشکارا بیماری بمباران اتمی تشخیص داده بودند. دکتر فوجیتا در فوکویاما هم همین تشخیص را تایید کرده بود. اما یاسوکو به هیچ وجه مریض نبود. گواهی سلامت را از پزشکی درجه اول گرفته و نشان سلامت قربانیان بمب اتم را هم از مرکز بهداشت دریافت کرده بود تعداد گلبولهای خون، انگل روده، ادرار، رسوب خونی، ضربان نبض و تنفس که با گوشی پزشکی بررسی شده بودند و غیره همه نشان میدادند که چیزی نامعمول در او نیست. چهار سال و ده ماه بعد از خاتمه جنگ زمانی بود که سر و خاستگار بسیار مناسبی برای یاسوک پیدا شد. طرف ارباب جوان یکی از خانواده های با اصل و نسب روستای یامانو بود ظاهرا جایی یاسوکو چشمش را گرفته و واسطه ازدواجی را برای پرسجو فرستاده بود وقتی نظر یاسوکو را پرسیدند موافقت خود را اعلام کرد شیگماتسو حواسش را جمع کرد تا این بار درباره شایعه بیماری اتمی حرفی زده نشود و گواهی سلامت را که پزشک درجه اول نوشته بود برای واسطه فرستاد. این بار همه چیز روبراه است. این کارها برای محکم کاری است. افراد در این دوره و زمانه تمایل دارند که قبل از ازدواج گواهی سلامت پزشکی رد و بدل کنند. به نظر نمیرسد این کار برای طرف مقابل هم امری نامتعارف باشد. چون واسطه همسر یک نظامی سابق است پس احتمالا از وجود چنین این مشکلات جدیدی آگاه است. به هر حال این بار همه چیز رو بر او است. شیگه ماتسو این حرفها را به همسرش گفت. هرچند نصفش تظاهر بود، اما این روش محکمکاری واسطه را متوجه جزئیات کرد و نتیجه خلاف انتظار پیش آورد. واسطه برای پورساجو درباره سلامت یاسوکو به خانه‌های روستای کوباتاکه سر زد و در نامه‌ای که بعد از آن فرستاد، نوشت که می‌خواهد بداند از لحظه افتادن بمب اتم تا زمان بازگشت به روستا تا یا کجا رفته است؟ اینها چیزهایی بود که شخص واسطه میخواست بداند و درباره آنها با طرف اصلی صحبتی نکرده بود. شیگماتسو افزون بر آنچه بود باز هم احساس مسئولیت بیشتری کرد وقتی همسرش نامه را خواند آن را به یاسوکو داد که در سکوت نگاهش را به تاتا تا می دوخته بود. بل همسرش برخواست و یاسوكو را به انباری صدا کرد. یاسوكو به انباری رفت. مدتی بعد، شیگماتسو دزدیده نگاه انداخت و دید همسرش صورتش را بر شانه‌های یاسوکو گذاشته و هر دو حق حق می‌گریستند. خیلی خوب، این بار تقصیر من بود. مكافات بیمار بودن فقط به خاطر عراجیف دیگران؟ نمیدانم. ما دلیل پخ شدن دوباره آن را پیدا خواهیم کرد. یاسوکو آرام برخواست. دفترشیاد داشتهای روزانه را از گنج برداشت و بی هیچ کلامی به شیگ مادسودند. یاد روزانه یاسوکو تاریخ سال 20 شوا برابر سال 1945 میلادی را داشت. بر جلد آن نقشی از آمیزه پرچم ژاپن با پرچم نیروی دریایی تصویر شده بود. هنگامی که در شهرک سندای هیروشیما بودند، یاسوکو بعد از شام از میز تاشوع غذاخوری به عنوان میز تحریر استفاده می کرد و یادداشتهای روزانه را می نوشت. هر چقدر هم خسته بود، حتماً این یادداشتها را می نوشت. نحوه نوشتن های روزانه یاسوکو به این صورت بود که چهار تا پنج روز اول را به صورت ساده و در چند خط می نوشت، ولی در روز پنجم یا ششم، وقایع آن چند روز گذشته را به صورتی دقیق و جز به جز شر می داد. این روشی بود که شیگه ماتسو پیشتر آن را به کار می برد و بعد از اینکه آن را به یاسوکو آموخت یاسوکو هم آن را ادامه داد شیگه ماتسو در شبهایی که دیرتر به خانه می آمد یا خوابش نمی برد به مرتب کردن کارها می و از همانجا بود که روشش را ابدا کرد روش یادداشت نویسی که خود شیگه ماتسو آن را روش زربال عجلی می نامید. به هر حال هر چه که بود، اکنون لازم بود شیگه ماتسو های یاسوکو را رو نویسی کند و برای واسطه بفرستد.